خب باب ما رو به سایم باب آنچه که میخورد یا میشکند با آن روزدار یا به عبارت دیگر اون چیزهایی که روزه را باطل میکنند و فطر و سایم قد یکونو من عشرتی اوجه میگه و شکستن یا خوردن روزدار خوردن که نگیم شکستن میگیم و شکستن روزدار روزه روزدار از ده وجهه احدو هو احدوها ما وصله الالجوف من غذائن و غیرهی یک هر آن چه که بشه برسه غذاو یا غیر غذا حتی لوی بتل خردلتن او حساعتن افطره بیها میگه حتی اگر فرو برد یک خردلی رو یک دانه خیلی کوچیکی خردلو یا سنگریزهی رو افطره بیها میگه روزش باطل میشه الا ان يكون ناسیا مگر این فراموشی باشه فيكون على صومه وان ان شبعه و روی مگر فراموش از روی فراموشی باشه اگر از روی فراموش بود فيكون على صومه پس بر روزه خودش باقی است اگر چک سیر بکنه اگر چک سیر بلوشه ولا کفارت عليه این افطره با اکل و شربه بر شخص نیست اگر روزهش رو شکست با خوردن یا لوشیدن چون احناف میگند دو ماه کفاره داره که روزه بگیره دلیلشون دلیل یک حدیثه ولی در علت با همدیگه اختلاف کردن اون حدیثی که شخصی اومد رز پیغمبر گفت من حلاق شدم با همسرم نزدیکی آمیزش داشتم پیغمبر بهش گفت سه چیز گفتی که از اونها این بود که دو ماه چکار کن روزه بگیری یا برده آزاد کن یا شش مسکینو خوراک بده که هیچ کدوم از اینا نه خود داستانش متفاوته کاری نداریم اینجا بحث جیوا بود بحث آمیزش بود شاف میگن اگر شخص فقط آمیزش داشته باشه این کفاره روش میاد با خوردن و نوشیدن اهلاف میگن نه علتی که پیغمبر این کفاره رو بر شخص آورد شکستن خورم تر رمضان بود حالا اگر کسی با آمیزش هم نباشه با خوردن هم خورم رمازان بشکنه بیشکنی اون موقع چکار میکنه دو ماه روزی میگیره یا همون کفاره که اومد در هر صورت فقهای بزرگوار اختلاف کردن امام شافعی رحمت اللہ میفرمایند کفاره برش نیست اگر با خوردن و نوشیدن روزش رو کار کرد باطل کرد فقط قضایی میگیره کفاره برش نیست والثانی ما وصله ایل من سعود فی الانف او تقدیری دوائن في الادن رو به دو من چیزی که روزه رو اون چیزی که به سر برسد حالا چه چکاندن در بینی باشه سعود فی الانف چکاندن قطر در بینی او تقدیری دوائن فی الادن یا چکاندن دوائن در گوش میگه رو به روزشش كارم كله مش كله، وإن دهن رأسه أو كحل عينه لم يفطر وإن ظهر طعمه في حلقه. مجانب سرش رو شرم كرد، يا تشمشاش رو، تزاد زور مزاد. روزش ده مش كله، أجر تكهر تعم در حلقش ظاهر بشه. وكذلك لو شم طيبا همتنين أجر بويد بويرة. آخو شویی زد بازم روزش نمیشکنه و الثالث سو منشکننده استفراغ استفراغه این استقاع عامدن افتر اگر استفراغ عمدی کرد میگه میشکنه و این ذره القیعو لم یفتر اما اگر استفراغ برش غلبه کرد دست خودش نبود اینجا دیگه روزش باطل نمیشه ولا لا یفتره والغثياني وهمترين روزش نمش كره بعروه بشعور ده الدل شعور ده الدل ماله مركه دل مي استفراغ والرابع المباشرته إن أنزل بها من غير إيلاج چارم این چیزی که روزه رو میشکنه میگه مباشره هست اگر مباشره بازند میگه اگر معنیش انزال شد بدون دخول افتره روزش چی میشه میشکنه ولی کفارت علیه در این حالت برش کفاره نیست چون دخولی انجام نگرفته ولی و این اولا جا حتا غیب حشفت ذکرهی فی احد الفرجین من قبولین او دبرین من آدمین او بهیمتین افتره انزل اولا یونزل میگه اگر دخول انجام گرفت داخل کرد تا زمانی که خلاصه فرو رفت قائب شد حشفه ذکرش آلهش در یکی از فرجین چه قبل چه دوبار چه انسان باشد چه میگه بهیمه ای افتره روزش شکسته با دخول روزش میشه میشکند حالا چه منی خارج بشود چه نشود و علیه ایو کفر این کفاره داره دخول چه داره کفاره داره اگر نه باش مباشرت داشت آ زن مباشره داشت ولی دخولی انجام نگرفت منیش نزول شد اونجا دیگه کفارهی نیست روزه شکسته ولی ای اینجا نه اینجا میگه کفاره داره کفاره همون ای که تو براش روایت داریم دیگه در صحیح بخاری و مسلم اومده در یک آره اومده چون امدت الاحکام اینو هم روایت میکنه و امدت الاحکام احادیث بخاری و مسلم روایت میکنه و عليها يكفر بات قراقبه المؤمنه سليمه من العيوب التي خوف كسي دخول انجام داده ميگه كفاره بده كفارش اين هست كه برده مؤمن سالمي رو آزاد بكنيد اون سالمي رو كه از عيوب سالم باشه ها اون عيوبي كه در كار كردنش zarar mizanand با سالم باشه zarar hay ashkar فا الام یجید سام شهرين متطابعین سوى يوم القضاء اگر نتونست برده مؤمن آزاد بکنه و اون قید دیگه ایک شوافه اضافه کردند در این صورت البته این قید آخه بخاطرین گفتن فقاها دیگه این قید و اضافه نمیکنن میگن برده مؤمن آزاد بکنه اون موقع دو ماه روزه بگیره غیر از اون روز قضایش یعنی شست دو یک روز فا این لم یستطیع اگر نتونست اطعم ستین مسکین ان اون موقع شستا و خوراک میده. ده چکار میکنه؟ 60 مدن من غالب الحبوب المقتاته شست مسکین و مد غذا میده. برای هر مسکینی رو یک مد غذا میده. ببینید چار مد میشه یک سا چار مد میشه و یک سا میشه دو کیلو و دویس و گرم این حده اقلی که درش آوردند خب. اینو شما تقسیم بر چار میکنید هر چقدر اومد میشه یک مود، میشه چی؟ یک مد میشه یک مشت. یک مشت چار مشت میشه یک سا دیگه وزن شده را آوردن خدا را شکر بزرگ آورد در هر صورت پس اگر دخولی انجام داد کفاره میده ولا یفطر بالاحتلام ولا مباشرتی من غیر علاج ولا انزال میگه روزش نمیشکنه با احتلام خابیده ظهر تو رمضان احتلام میشه اینجا دیگه روزش نمیشکنه ولا مباشرتی من غیر ارا علاج ولا انزال اگر مباشره داشته بازنش خابیده ولی انزالی رخ نداره ایلاج دخولی روخ نداده اینجا هم روزش باطل خابیدن خالی که دیگه روزی باطل نمیکنه ما باواس همه چیزی که انسان محروم نیست خب و الخامس و من احد السبيلين و ایلاجی و ایلاج ما یغیبو فيه من دوائن و غیری یفتر به پنج من باطل کننده حقنه هست دوارو از یکی از دو راه وارد کردنه آه حالا این که واقعا مثلا شیاف این هم واقعا مثلا واقعا باطلش میکنه یا نه این البته روش جه هست بحث هست باله. خلاصه اصلا این مثلا شیاف واقعا غذا هست اصلا یا یعنی فقط تب و پایین میبره بعدا این واقعا تغذیه میشه که مثلا طرف رو نیاز بکنه یا فقط به روده قسمتش میرسه اینا بحثایی هستن که بینان میگذاریم برای مجتهدین بزرگوار کتاب رو فعلا حل میکنین میگه حقنه از یکی از دو راه دو وارد کردن اینکی از یکی از دو راه و ایلاج مایغیب و من مندواین و وارد کردنه آنچه غائب میشه در یکی از این دو سبیلین از دوا و غیری و چیزهای دیگر میگه افت رو به روزه رو چیکار میکنه باطل میکنه و كذلك لو جرح نفسه حتى وصل و الى جوفه افطر میگه همتونین ها احتیاط خیلی زیادی خرج داده اینجا وافه میگه همتونی اگر جرح کرد خودش رو زخم کرد تا جایی که اون آهن به جوف رسید اون چیزی که با جرح کرده خودش رو افتر روزشتی میشه میگه باطل میشه اینجا که دیگه چیزی خب به شکم نرسیده که خب بخوره بنده خدا ها خلاص دیگه فقهای بزرگوار والصادس الجنون و قل شيش من شکننده چیه دیوانگی اگر اگرچه که هم کم باشه ولا قضاء عليه الا ان يدخل الجنون على نفسه میگه قضایی نداره اگر دیوان شد مگر اینکه خودش سبب اون دیوانگی شده باشه مگر اینکه خودش کاری کرده باشه که چه بشه؟ مثلا چیزی رو خورده و شده دیوانه. مگر این که داخل كل دیوانگی رو بر خودش خودش که در این حالت فیقد این افاق قذابی گری زمانی اگر بیهوش اومد خوب شد. و هاف تو چیز بیهوشیه بیهوشی با دیوانگی فرق میکنه. اونجا بیهوش نیست دیوانه مغزش کار نمیکنه. اینجا نه نمی بیهوشه. چون این توضیح دادم که بدون بیهوشی و دیوانگی چیه؟ اغمابش میگن دی بهوشی رو بکمار رفتن انکان في جمیه اليوم افطر اگر در تمام روز بود که خب روزش باطل میشه و عليه القضاء بعد الافاقه و بعد از که بهوش و روزه روز میگیره و انکان في بعضهی لم یفطر اذا صلیم طرفه اما اگر اغما در قسمتی از روز بود در بگونه بود که در دو طرف روز یعنی صبح و اون آخر روز اول روز و آخر روزی بود سالم بود به هوش بود اینجا میگه دیگه روزش نمیشکنه. و الثامنو الحیز طفت رو به المرأة و انکانه في بعض اليوم ولا تفطر رو به الاستحازة هشتومین شکننده حیز هست عادت ماهانه هست که این البته اجماع هست بین فقه خوردن و نوشیدن جمع کردن بعضی ها اجماعی هستن بعضی بین فقه ها چی اختلاف بس الحيز تفطر به المرأة وان كان في بعض اليوم بيجهز وزرو مش كانه اگر چكه در قسمتي از روز باشه آقا نیم ساعت مونده برای غروب طرف حیض شد روزش نمیشه خلاص میشه ولا تفطر بالاستحازه اما با استحازه روزه باطل نمیشه وشنان شلون وبا استحازه نماز هم ميخونه با استحازه نماز هم ميخونه والتاسع النفاس تفطر به الحيز نه این چیزی که روز رو میشکنه مخصوص زنانه باز هم اون نفاس هست خون ولادت هست از سه تا خون هست یکی خون عادت ماهیانه هست که ماهانه میاد یکی موقع تولد فرزند میاد یکی استحاضه هست که برای بعضی زنان اصلا پیش هم نمیاد که در غیر از ایام حس هست خب اون هم اون, اون با اون هم نماز میخونه هم روزه میگیره اما حیز و نفاس حکم یه چیزه پس نوه میشکننده نفاس هست مالند حیز هست ولا توفترو بوضع الولدی اذا لم ترم اهوده من میگه روزه نمیشکنه یا نمیشکند روزه را زن زمانی که خون ندید همراه وزع اولت، وزع فرزند با تولد فرزند اگه خونی ندید میگه روزش نمیشکنه والعاشرة والردتو يفتروا بها الصائم ده من چيزي که مشکنه با اون روزدار روزش رو منظور روزه رو مشکنه رده است چه است؟ چه رو گفته؟ اصلا بابو ما يفتروا به صائم مشکنت با اون باز میکنت با اون روزدار یعنی انا دست روزدارا روزدار با این کارا روزش مشکنه بس ده همین چیز رده هست بازگشت از دین هست و یقضی اذا آده الیل اسلام معا ما ترکه من الصلاوات المفروضات می که قضایی گیره شخص مرتد زمانی که به با اسلام بازگشت همراه با اون نمازهای فرضی که ترک کرده یعنی اگر کسی مرتد شد نمازهای ترکیش رو هم اعاده میکنه و و های خورده شده رو هم چکار می باطل شدهش رو در حال ردخ روزه درست نیست چون طرف باید اولا ایمان بیاره تا فروات براشد درست باشند اینا هم شدن از شکننده های